توبه کردیم از پاشگیری چون مده یا برنامه هم داریم بزرگتر توی کریم بستا ولی من که کچکترم میخوام واسه دست بالا بزنم واسه خودم هم میزنم این اولین برنامه میرم دل حلیمه رو روشن کنم به دست بیارم یوری با واش کردم که مشغول زمش شم. میخوام شما دو تا بشید با جناقم رفیق هستی ولی کمه با جناقام میشه ولی بازم یار برادری برادری هستیم هستی, هستی. Thank mm -hmm. you. سر سر بشین سر عجاد یه لغوه نون در آرد بازنه بچه هم بخونه آشه این گوستان پر کنن صلم کن به خدا این دیالیز مامان که دیگه جواب نمیدارم واگذار کن به خدا پول کلیه ای که باید بخریم نجاتش بدیم زنده نگش داریم من واگذار بکن به خدا آقا کریم دوستان Thank <laughs> بابا خانوم خانومای نازمون من دارا. سلام بابا جون چطوری داری؟ چیداری اینو کشی بابا سلام من میکشم بابا باشه باشه بابا بابا درشم میکشی بله آهان چه رنگی ماهی قرمزه بیه آهان درسته بای که بای که جان هنوزم سلام حرف خود دستی بله میخوام راننده کامیون بشم باش تو همارو روانده کامیون بشو سلام آقا سلام آقا جون بیا شما درد نکنه بستنیه باست ستاره توپول بریست چش در یه گوشه خاشقان دیالیز داشت اموز چهار اما داداش چی میگه؟ میگه هر چهی خدا میخواد خدا که بره اما داد که دکتور رو بنده خداست چ اینکه لیستت نمیده نمی‌ده. دنبال کلیه با شمارش. خور پنج جوز و جواسرت Ja ta on ta, ta on ta, مت و پرتغال رو من در میارم قیمت مز من در می قیمت سیبار من در میارم. مان قیمت ذاره. او شش هم حال به کارت بره. که دستت وسیعت بابامونه عرص بابامونه تربیت بابامونه زنده بود چون تاسیلت میکرد حرم شنگی سبوبه رو دنه بردم نکه خوشم اومده باش ازش آفتابی نشدی تشرت بزنم که نونه حاج بدری خوردی شدی گوشتو ازوله دستت خطا بره میگن نونه حاج بوده که یه لاتبی سرو بارون اون داده آج بعدی دستش رو سرت بوده که آدم بسازه وزید کرده سفر داده به من که آدم بسازم اونی که منو آقا میخواییم بسازیم چون خوب برازنده دستش گیست من کلو بردارم به باشم بولو کلیم بودستان خوردم خوردم یا نخوردم خودم آنو تهمت من آنو داشم راست من آنو تا نمیخوام خونه بادم آلوده بشن تا تو حالیت نیست خونه بادمی؟ حالیت نیست حالیت نیست میخوام با جناقم بشی که سر دست همه سر و بالا کر باشه از این به بعد ببینم یا بشنوم. باز خاطر من یا باز خاطر هر کس و ما کس دیگهی صداد صداد از یه ماهی بالا تر رفته خودم دستتون میشه کنم که هیچ قریبه ای پیدا نشه بگه دست پسر حاج بدزی رو چه کندم بدب کن هنیف نکنی از چشم افتادی بناگوش بازه بازه Nice little biggy, on Charles Wunders. Charles Smith. All of تو در نیار بوربرنگی از بابات تو وجودت نیست آه. من عصبانیمشو نیستم آقا کنیم بستان درست به شما هم نیستی نونه هر اون که از گلود رفت پایین دیگه به بیاری عادت کردی نه امادم قرص بگیرم اومدم یه سر سوزن از حقم رو بگیرم که بشه کلیه واسه زن خاله چطوره؟ خاله؟ <تصفيق> تو کلیه نداشته باشی چطوری؟ خوبی کلامه خاله پونزده ساله برم اکمنده نگفتم نشنیدم اسمش چ چ هست اون بلغ بگیید اون چک بم چقدر مزننه دستم نیست خیلی خب من می نوسم اگه کم شد خبر بیشترش کنم. گچی دلت باشه آخه این کلیه میشه واسه خاله زبون شما تهمت از رو من برمی داره من تهمت رو برداره که تهمت به خودم میخوره نمیگم 15 ساله به خاطر خیانت در امانت به سر بدید رو دارم سر گفتی زدن نزدید نزدید خدا میدونه تو خودت هم خوب میدونی بابای من اهل قصم نبود اهل دوزی از شریکش هم نبود شریک چیه پاره تن هم دیگه بودین این چکو بگیرید این حرف و سخن رو تموم کنید به زنتون برسید مدهی چقدر بودی؟ دیویس میلیون دیویس میلیون به بلیوز نیمزم کافیه دیویس میلیون پومده از پیش آه. پس اسکنتشون خواهیم حجوه اینه که حقه میخوام تو همین میدون تو همین میدون که بری خررام ک یاره؟ تو همین میدون مگه تو خرابم نکردی پادا شاگرد بابات مین نکردی درد این که شاگرد بابای من بودی یاره دردمنی که داداش مییم عین برادر با جناب بودیم عین برادر شکل بودیم عین برادر آ. در یه چیز از هم دیگه جدا بودی و اون هم ناموس بود من و بابات و دایی توکولت چاقو رو گذاشتیم زنین که آدم شیم زن بگیریم بچه شیم بچه من مثل آدم بزرگ شد بابات پشت گوشش می دید تو رو آدمی که امروز هستی نمیدید نمیدید نه زمانون خوهر بودن ازدواج که کردیم هم جاری شدن خوهر شدن کار کرده نگرفتم که بتونم سه دونگه این نجره رو بخرم اون موقع قیمتی کن بود الان قیمتی کنی بایا کشیدی نداشتی بخرم یه طرف مرد خور و جیوه خورم کردی پومزه سال از مگه این حاجی میگذاری حاجبتی آه پونزه سال میگذره چقدر تون کشید تا تون رسید پنشت و حجره برسید ساخت نونسازی پشت ساختمون نونسازی ساختمون نونسازی پر چیکار کار نمی کنید لانت بر پشت هم انداز و زیره و گل آقا کریم بوستان در خوره لا این حرفا این ادعاها این دعوها هوی نا گرفته پونزده ساله دو تا قرب برای آقام و مادرم هم از کردم ولی این حرفا تم کلو خب برد هجره میگیرم ولی نه تو این میدون تو دو این تهمت از رو بردار درد دار نه درد دار آنها پنج و پنج نگاه کنن بگن کریم گوستان راست میگه راست نمیگه اگه راست بگه اگه راست بگه اگه راست بگه. اگه, را. اگه اگه اگه اگه, اگه. Min Qualseствен, sivumise tunnepas Ili. Niii meel jwel بگیر این و خاله رو نجات بده نجاتی که تو بابتش گره و کشی کنی واسه عمد خوبه تو هم گره و کشی آراز و لیلا خاطرخواهشون جدید نیست میخوانم دیگه رو لیلا بیشتر نخود کمتر نمیخواد از حنیف بپرس بپر چند خواستگار رو لد کردی که حتی پاشون بخونی دارشش نرسیده تو خاطر خاطرخواه آرازه لیلا اگه میگه نه به خاطر و نوک توه به خاطر اون یلغم نونیه که بشتری بزرگ شده چون گروهی توه من خودم شاهد بودم که بابات دل یاد میداد به بزرگتر از خود تو نگی شمایی که شاهد نبودن این بیادری تو پای اون خود رو اسم تو لیلا اون زبون به خیلی همیشه پک کردم چواباش نمیذره این شیر سر صابون بگیره همینجوری جوری در قضاوت میکنید دیگه اگه پولی برده اگه پس جلوی زندگی من با لیلام گرفته پول که برده گفتید برسونم ایتون رو جفت چشام میرسوندم ایتون ولی فکر نمیکردم بدگویی از خاندادشم قراره بونه گفتم برسونیم چون میخوام باد حرف بزنن گوهیم بزر جم من رو تو فراموش کن لیلا میخوادت مگه تا حالا کسی از خودش شنیده بگه نمیخواد تو چه بگی؟ لیلا اونم یه آراز پس مبارکه در عوضش در عوض. عوضش <تصفيق> خوشبختش حسن جون تو یتیم بدری خوشبختی و سعادتت وظیفه که روی این شونه های منه Kõrin Buston Raft سلام بابا سلام بابا جام رو تو اتاق وفت پهند کنی حرف دارن. چشم là voilà. درد تارت نمی‌کنم، خالص نمی‌کنم. <تصفيق> این اول فتح‌خانوم غمش بود که خدا بهمون دختر نداده. یادته اول ف؟ بله. حالا ببین، دو تا دختر داری عین دسته گل. سه تا دختر داره عین دسته گل. اینم چهار رون. یه <تصفيق> روز میگم ماشالله <Janae> ماشالله چه <صفيق> امونتو دو در بگم بخانو خانوما <قلوم> بله بفر خب خب بگذاریم تا دور دست من بود خونواده رو با جون و دل رو گردم کشوندم بالا وقتی هم که از دور افتادم از اص نیافتادم اگه افتاده بودم هرچه بدنومی مینوشتم پن می کردم تو میدون واسه مردم این قلپت خانوم ستون این خونه هست پسر عزیزم ستار امید این خونه است. دختر کوچولو نوه عزیزم و عروسم و دخترم هم اطروبوی این خونه بل کم داشتین کم خوردیم گرد خویدیم اما هنوز که هنوزه رو پایین چرا چون خونواده ای قبلا اونم معلومه ذات خونواده بودن صبر و تحمله شکبایی و صبر و تحمله؟ بله چشم گفتن کوچیکتر به بزرگتر در میخواد امشب. یه چشم از دهن این لیله خانم بشنفم این قرن که تو دهن آب میشه بگه چشم خلاص. من کریم بوستان ده بودو توقعیم <تصفيق> توقع دارم بخی برای بچه ها جون میذارم نمیخوام اونا جون بذارنه دورت جونشون ولی حتی اخن هر چند وقتی یه دفعه اگه من یه چیزی خواستم یه چیزی گفتم بگن چشم من این چشم گفتن تو لیلا لازد دارم من امروز با چاوش حرف زدم نیم ساعت بعدشم با آراز حرف زدم تومنی دوزار با هم پردارم با چاوش؟ حرف چی؟ حرف حق یه ارزن هست حم که بشه کلیه واسه اللفف شما رفته پیش چاوش نه بیار مدرک بیار که پنجزار از من آقل تبوله ولی شما رفتی پیش چاوش بابا جان من اگه رفتم گدایی جایی اون وقت به توپ به من. حالا من کلیه میخوام چیکار کنم بزنم تو سرم چرا بزننی تو سر؟ بابا وجود من؟ کلیه میخوای بزنی سر جاش داد داد چیه؟ چاوش باید چند میلیارد بده اینجوری بپرس. چند میلیارد داد؟ قروم در زدتا بچه ترزید پس پنجزار آقلتری بخوا بگو به تایشون آقلتر نیستم ولی شما همه چون میدونین که سارا میتونه کلیهشو بده به مامان بابا جون جان من من آخه عروض سی سالم رو ناقص کنم که چی بشه؟ سن شست سالم بشه هفتات سال خب میخوام نشه بچه جون خب بگو که راضی سارا خب بله من جواب ندارم برای پدر مادرت که رو جهیزیه دخترشون یک گلیم بوده به کسی چه مربوطه پشو بریم موقعی خوابتو ببخشه من بچه رو بخوابم چرا مربوطه یعنی زنه تو شد دیگه بابا ننه بخ بزنن برای جلو نه من جواب ندارم بساشون خواهد بریزی این و این پیش منم شرایط دادن کلیه همو دارم بدبختیه من اینه که عروسم و دخترم هم شرایطشو دارن اما منو بسرم نداریم خوشبختی اینه که من شرایطشو دارم دختر جون بزرگت نکردم که الان کلیت دارم دارم به مادرم میدم چونت سلامت مادر جون بابات راست میگه خاک بریز لیبه جون چرا مامان؟ چرا بابا خاک بریزم؟ مامان کلیه میخواد چرا بهش بدم پس فرده شکم بذار مادر نداشته باشم بچه میخوام چی کار زبون تو گاز بگی دختر مادر نداشته باشم چیه الان باید از واقعیتا حرف بزنیم جواب مردم چی میدیم مادر چه اهمیتی داره مردم چی میگن خیلی هم اهمیت داره من همیشه نگران حرف مردمم کیه که نباشه کیه از آبرو بدش میاد نه که واسه حرف مردم زندگی کنم ولی حرف مردم اثر داره پ چون میخواست من به زبون بیام که حق ما من نبوده این همه سال بعد همه جا بگن دیدی کریم وستان دروغ میگفت و به ما تهمت میزه بله واسه همین قبول نکردم آلفت جا گفتم نه اما به آراز گفتم آره دعوای من و چابش کی پاش به خاطر قایی تو و آراز باز شده خدا شاهده نمیدونم الان فهمیدم لیلا یه تکریفی میخواب گردارت بسرم زن آراز میشی چون میخوایش زن آراز میشی چون من مدیون روح بابای خدا بیا نباشم و مرد میخوام یا زن میخوام تو این اتاق الان روحت و من حرف بزنه تموم شده رفت بوی خوشی به دماغم نمیرس آقا برسه اولفت جان برسه من اون گروکشی که چابش میگه نیستم لیلا بچمه آراز بچه بذریه من دست این دوتا رو تو دست هم نذارم فردای روز قیامت جوابه باباشونو چی بدم بگم تو اونو برادر از برادر گرفتن عروس هم سی سالشه یه بکه شیست ساله داره لیلا سیه یه سالشه همین داره خواستگاه درد میکنه چرا؟ چون کسی نشسته بدلم دلم آراز نشسته با جون آراز به دلت نشسته کاری که تو میکنی ها مراعات منی ظلم به منه بزرگیت کردم به خاطر خدا به خاطر دلم نه داغ بذارم تو باقه چاوش گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری یعنی من اینقدر چشم بستست همه چی؟ لیلا خوب گوش کن آراز میخواده اگه میخوایش بسم الله من پشت این وصلتم به جان ستا پس بعد دعواتون رو چاوش تموم کنی منوز نه به باره نه به داره چاوش شناس شدی دمت گرم لیله خانم بیرفت میگی ربتش اینه که هر دعوه و حرفی دودش میره تو چشم لیله و زندگیش مدعوه نداری پس یعنی گذشتی باگذار کردم به خدا آیدی چی بوده تو این 15 سال باگذار کردنه آقا جو پس یهو شما منکره خدا شو کی من؟ من, من دارم میگم نگو هیچی نگو هیچی هیچی نگه من میگم کدومتون آرزو ببینید یدو چاواشو حقیقی میگیم پای مال شده ازتون نمیافتیم جون بابا کریم بستان کدومتون من اولیشم دوبامیش من نیستم دلخورم نکن ساتو نیستم به والله نیستم هرکی تو بازیه چاباش باشی من باش تو جنگم من وسط این جنگ چیکار کنم من این پولو ندیدم از شما هم دروغ ندیدم و نشنیدم تا حالا بابا بستم شما میگین حقم آمان الفت میگه حقی داداش ستار میگه حقی از اون طرف آب ی آراز میگه حق نیستین داداش هنیفم میگه نیستین چاباش میگه نیستین. منو میخوایم وسط این بلبش رو بفرستین؟ این چه تکلیفیه که روی دوش من میذارین بابا؟ بله با اجازهتون اون آراز رو میخوام تا الان سر بلند نکردم جز احترام به چاوش. شما هم که خونوادم این همیشه دوست هم داشتین حالا پاروده لنظرم کدوم طرف داشته باشم؟ زن آراز بشم و یه طرف از دست بدم؟ آراز بیاد توی این خونه یه تیک از ذهن داداش ستار در بیاد یه نگاه حسرت از شما بزنه بیرون بابا یه آهم اون نفت شنیده بشه آراز وای میسه نگاه میکنه یا پشت داداشش در میاد در میاد دعوی شروع میشه احتراماز بمیره نمیره سند آورد مدرک آورد که پنیزار ارلش بیشتر از ما ولی آبجی اگه رازیشون کنه و حق رو به حقدار بدن <متصفيق> اون وقت میشه همون چیزی که چاوش گفت گروکشی گروکشی میشه چایه سرد شده میرم یه سه رو دیگه بیارم تصد درد کنم من به آراز گفتم پنشنبه با خیال راحت بیان واسه خاسگاری با خیال راحت خب اون وقت بیمشورت لیلا میخوادش هاچ خانوم الفت اجازه نمیخواست بله ولی از حقتون بگذری به بله ها نمیگذرم مامان آقای کریم بوستان چوبتو میخورم تو میکنم ولی اگر شما هم بگذری من نمیگذرم این زندگی ای که مادرم لایقشه، پدرم لایقشه، زنم لایقشه، ما لانگ خرج ای عیدو کرای خونه ایم ای به خاطر اینکه پولمون تو جیب یکی دیگه است. اگه ندشتی میگفتیم خیلی خوب نداریم، روزیمون همین قمقدره، ولی داریم. داریم و باید بریم از جیب اون لعنتی بهش میمون. نه، اینا رو وسیله نکن آن. آقا کریم، چش منی؟ نوکرتم هستم، ولی من از حقت نمیذارم. از حقم نمیذارم، کو بینام؟ کجا میری؟ کجا بران دیشب خواهی با آمانه خواهی دیدم خدا بیا مورد تشنه لنگون لنگون داره یاد سمت آجی تاراز رو میخواد آرستاج سر این مسلت کم بیاره که این مسلت چک بگیره پس مرافع رو بخوابونه این تاجسه رو دومات کن دعواد توومه نسخت بگه شده تنها شب تو رمن زخم از دیدم آشفتم آشفتم شلون اجنوك سابن دیدم اجنوك سابن